بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا اینما توعدون لواقع سوره مبارکه مرسلات هست سوره مکی هست که در اوائل زندگی مکی این سوره نازل شد سی و, و سوره هست که برآن حضرت صلی علیه و وسلم نازل شد و موضوع این سوره هم مثل سوره های گذشته موضوع قیامت هست این سوره های آخر قرآن مجید بیشتر اختصاص دارن به این موضوع اما مناسبتش و ربطش با سوره گذشته با سوره دهر در این هست که در سوره دهر مسائل مربوط به حشر و نشر را تفهیم فرمودن حال در سوره مبارکه مرسلات می که نه تنها حشر و نشر هست تنها برخواستن از قبرها هست على سبیل ترقی انجا الله تعالی می فرماید که انما توعدون لواقع آنچه که شما وعده داده شدید از حساب و کتاب از ثواب و عقاب جزای نیک و جزای بد ہمین ها اتفاق می افتی ہمین ها محقق میشه عملی میشه خدای تعالی سوگند یاد می فرمائید یا شاهد می گیرد انواع بادھارا والمرسلات عرفان تا فالملقیات ذکران پنج آیه اول بسیاری از مفسران میگویند که منظور از این پنچیز پنج نوباد هستند و بعضی میگنن پنج نوباد نیستند بلکه اینها انواع فرشتگان هستند بر اساس بادها اگر ترجمه بکنیم میشه والمرسلات عرفا یعنی شاهد هستند و سوگند به اون بادهایی که رحا می شوند المرسلات یعنی رها می شوند میوزند عرفن با نرمی آرام آرام آهسته آهسته و بعضی گفتن عرفن یعنی متتابعا پیا پیاپی، یعنی بعد پیاپی میوزد کم کم میوزد فالعاصفات عصفا، پس اون بادهایی که تند میوزند یعنی قسم به با اون بادهایی که آرام میوزند و قسم به با اون بادهایی که تند میوزند عسفاً تند و تند وزیدانی. و ناشرات نشرا و قسم به با اون بادهایی که منتشر می کنن. نشر نشرکننده هستند منتشرکننده هستند نشرا منتشر کردن چرا منتشر می‌کنند چرا نشر میکنه ابراهار جابجا میکنند. فالفارقات فرقن پس جدا کننده هستند جدا کردنی. یعنی بعد از اینکه ابر میبارد، بعد از اینکه باران تمام میشه، این عبرها را دوباره بادها میایند و این طرف اون طرف جدا میکنه از همدیگه متفرق میکنند. فالملقیات ذکران پس اون بادهایی که در واقع پند میدهند. القامی کنم پند و موعظه منظور چیه القامی کنم پند و موعزه؟ ببینید شما در آیات گذشته صورتهای مختلفی از بادها خاندید بسیار بادها هستند که نرم میوزند بسیار بادها هستند که تند و تیز میوزند منظور اینه که همچنین انسانها اعمالشون متفاوت هست بعضی اعمال هستند که موجب رحمتند موجب خیر هستند موجب صلاح انسان هستند و بعضی اعمال هستند همونطور که بعد تند ضرر دارد برای انسان و مصیبت ببار می آورد همچنین این اعمال مصیبت ببار می آورند پس فملقیات ذکرا ذکران این همه بعدها موجب عبرتند بر اساس این تفسیر اینها اشاره به بعدهای متفاوت در اما بعضی میگن فالملقیات ذکرن در هر صورت مراد هستند فرشته هستن. فرشتهایی که قرآن را ذکر به معنی قرآن هست قرآن را بر قلب شما القامی کنند. قرآن را با خود میآورند که قرآن سرابا پندی هست و معزی هست و بعضی علماء میگن کلن والمرسلات عرفن تاف الملقيات ذكران همه انها اشاره بفرشتها دارد والمرسلات عرفا يعني قسم بان فرشتهايك مسلسل وحي مياه ورند پايا پايا بي پايا در پايا وحي مياه ورند فالعاصفات وقسم بان فرشتهايك بادهارا تند ميوزانند فالعاصفات و الناشرات نشرا قسم به اون فرشتهایی که عبرها را پراکنده می کنند فالفارقات فرقا یعنی قسم به اون فرشتهایی که رزقها را تقسیم می کنند و بخش بخش می رزق هر گروهی را هر انسانی را هر مجموعی را و قسم به اون فرشتهایی که ذکرن قرآن را بر قلب شما القا می کنند قرآن را بر شما وحی می کنند عذرا او نذرا یعنی به منظور عذر یا نذر یعنی چه؟ یعنی برای قرآن وقتی که نازل می شه باعث چی می شه دفع عذر میشه که فردا عذری داشته نباشی فردا ای داشته نباشی پیش خدا که خدایا برای من هیچ چیزی نیامد او او نذرا یا به منظور انذار به منظور بیم دادن به منظور ترسندن لذا اینها می میایند قرآن نازل میشه که دفع حضر بکند از شما یا شما را انذار کند خداوند از وجل یا انواع فرشته ها را شاهد گرفتن یا انواع بادها را فرشته باشه هم مخلوق خداست باد باشد هم مخلوق خداست اون چیزی که مهم است جواب این قسم است بعد از این قسم است الله می فرماید انما تو عدون لواقع جز این که آنچه که شما وعده داده می شوید این انسان ها اون واقع می شه حوادثی که به شما وعده داده میشه، شه و اتفاقاتی که به شما وعده داده شده که اون اتفاقات می افتد اتفاقات نیک یا بد خیر یا شر اون اتفاقات میافتد بسیاری از شما جزای نیک و پاداش خیر داده میشوید شوید که خوب عمل کردن و بسیاری از شما جزای بد و به کیفر بد اعمال خودش می رسد توعدون ما تو عدون لواقع. اونچه که شما انسان ها واده داده میشوید اون واقع میشه. کی واقع میشه؟ بعد از این الله تعالی زمانش را می فرمایت فاذا ننجوم و زمانی که ستارهها بینور میشه هم سیعنی نورشون گرفته میشه نور ستاره گرفته میشه و ستاره میافته و سم او فجت زمانی که آسمان شکافته میشه و ادار الجبال و نصفت زمانی که کوها پودر میشه تک تک و ریز, ریز میشه. و ایده رسول اوقتت زمانی که همه رسول همه پیانبران اوقتت یعنی برای اونها وقت تاین کرده میشه که جمع بشمند در اون وقت جمع کرده میشه من به وقت معین لأی یوم اجلت این استفام استفام تحویلیه هست برای چه روزی اینها اجل داده شدند وقت داده شدند یعنی میدونید در واقع ایجاد هول است ایجاد وحشت است میدونی برای چی روزی عجلشون تعیین شده مدتشون تعیین شده لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل الله میفرماید همه این اتفاقات به خاطر یوم الفصل است اون روزی که فیصله همه شما میشه اون روزی که بین همه شما فیصله میشه و بعد خدای عزوجل به خاطر اینکه بیشتر اهمیت این موضوع در ذهن و در قلب و قالب ما بیاد بیشتر توجه کنیم سوال کرده و ما ادراک ما يوم الفصل میدونیم يوم الفصل چی هست خبرداری يوم الفصل چی هست لذا الله بفرماید یوم یومئذ للمکذبین اون روز فصل روزی هست که تباهی و هلاکت در اون روز برای تکذیب کنندگان یعنی ای وای بر اون انسان انسانهایی که اون روز را باور ندارند و اون روز را تکذیب میکنند و اون روز را قبول ندارند الله تعالی می فرماید اون روز روز سختی خواهد بود برای منکرین قیامت برای مکذبین قیامت و بعد خدای تعالی در ادامه می که نه تنها در اون روز گرفتاری هست در اون روز سختی هست بلکه در همین دنیا هم هست الم نهلک الاولین آیا ما هلاک نکردیم ها را پیشینیان را ثم نطبعهم الاخرین بعد از اینکه اون اولی ها را هلاک کردیم پشت سر اونها میفرستیم آخرین را تابع انها میکنیم یعنی پشت سر اونها. میفرستیم آخری ها را. آخری ها کیه؟ همین که در زمان قرآن بودند. علما می گویند این به نوعی وعید هست و تهدید هست برای قریش مکه که اگر گذشتگان را ما عذاب دادیم، هلاک کردیم، از بین بردیم شما هم پشت سر ها یعنی برای شما هم عذاب میاد. گویا اشاره هست برای اخباری که بعد از هجرت رسول الله اتفاق میفته فعلا این آیه در زمانی ناظر شده که رسول الله در مکه است هنوز هجرت نکرده این آیه پیشگویی میکند و این آیه اشاره میکند به اتفاقاتی که بعد از هجرت میفته بعد از هجرت یک سال که میگذرد در بدر جنگ میشه و در اون جنگ تمام سرداران و سنادید کفر و شرک کشته میشند هفتاد نفر گشته میشه هفتاد نفر دیگه اسیر میشه بقیه پا به فرار میگذاره لذا گویا اشاره هست که ای مخاطبین ای کسانی که شما با غرور و تکبر قیامت را انکار میکنید اگر ما پیشینیان را هلاک کردیم شما را هم پشت سر اونها هلاک میکنیم میفرسیم ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین ما این برخورد میکنیم با مجرمان همین کار را میکنی با مجرمان کسانی که جرم بکنند و کسانی که مثل شما تمرد کنند، سرکشی بکنند در هر دو دنیا نفعلو مجرمی زیرش میستی در دارین در هر دو دنیا ما با مجرمین اینگونه رفتار میکنیم ویلون یوم مکذبین للمکذبین حلاکت و تباهی در اون روز برای تکذیب کنندگان کسانی که تکذیب میکنن روز آخرت را و کسانی که تکذیب میکنن این قانون پروردگار را قانون پروردگار چی بود همین که کذالک نفعل بالمجرمین ما با مجرمین این گونه برخورد میکنیم این قانون را هر که تکذیب میکند هر کسی باور ندارد ای وای بر او هلاکت بر او الم نخلقکم بعد از این خداوند عزوجل دلیل عقلی بر حشر بیان می فرماید بر حشر که مرگ بعد از مرگ چگونه زنده شدن هست می فرماید شما تصور بکنید الم نخلقکم مم ماء امهین ا آیا ما شما را نه از آب بی ارزش اشاره به نطفه است از آبی بی ارزش بی ارزش نه نه خلقتون نکردیم فجعلناه فی قرار مکین ما اون آب بی ارزش را قرار دادیم در یک جای محفوظ شده و محکم قرار جای مکین محفوظ شده منظور اون رحم مادر هست که اونجا شما را مگر قرار ندادیم چگونه انسان متوله شد آیا با عقل جور در میاد عقل نمیتونه بفهمه مگر اینکه قدرت خدا باشد الى قدر معلوم در اون جای بود در اون محل بود تا زمان معین تا نهما که مبیش اونجا بود فقدرنا فنعم القادرون این حد و اندازه را ما زدیم بهترین اندازه زننده هستیم یعنی خل... پروردگار بهترین خالق است که بر اساس حد و اندازه دقیق تا اینکه این جنین تکمیل بشه کامل بشه اون حد و اندازش را تعین می کند یوم اذن للمکذبین حلاکت در اون روز برای تکذیب کنندگان هایی که این دلائل را قبول نمیکنند این دستورات پروردگار را و این راهنمایی های پروردگار را باور ندارند قبول نکنند حلاکت و تباهی بر اونها خدای تعالی یه دلیلی دیگه زک می کند می که شما ببینید قدرت من را و آثار قدرت من را ألم نجعل الارض كفاتا؟ آیا ما زمین را جمع کننده قرار ندادیم؟ چرا زمین جمع کرده؟ احیاء و اموات هم زنده را جمع کرده هم مرده را ما زندهها سر زمین هستیم و مرده های ما در شکم زمین هستند همه را خدا جمع نکرده؟ معلوم میشه که انسان که بمیرت جایش کجا هست در زمین هست باید در زمین دفن بشه باید در زمین دفن بشه حتی کسانی که جسدها را ها را میبنن میسوزانند، خاکستر میکنن میریزند اون هم بالاخره جذب زمین میشه او مگه کجا میره هر جایی انسان را ببری آخر تو زمین جذب میشه لذا جای اصلی ما پس کجاست زمین هست به همین خاطر فقها و علماء از این نوعیات برداشت میکنن استنباد میکنن میگم هر وقتی عضوی از بدن شما کم شد و از بدن شما جدا شد اون را جای دیگه نبرید اون را در زمین دفن کنید بعضی ها اصلا قطع عضو میشن دستشون پایشون قطع میکنن بعضی ها موها را همین مو هم عضو بدن هست موها را ناخن ها را وقتی که میگیرید اینایی که زائد هستند اینها را ببرید در زمین دفن کنید آدابش اینه چون خداوند میفرما همه چیز باید در زمین بره دوباره قرار بگیره شما گرچه در جای دیگه بندازید در آشغال ها هم بریزید در زباله ها بندازید هم آخر به زمین میره ولی بهتر اینه ادب این را میخواد که اعزای بدن ما خودمون دفن زمین بکنیم تحویله زمین بدیم لذا الله میفرماید الم نجعل الارض کفاتا آیا ما زمین را کنند کننده قرار ندادیم احیاء و امواتا چی را کرد؟ هم را هم مردهارا و جعلنا فیها رواسی و ما قرار دادیم در این زمین کوهای بلند رواسی شامخات کوهای بسیار بلند که و اسقیناکم ما انفراتا و شمارا آب دادیم آب شیرینی آب زلالی و آب شیرینی ما مگر ما نبودیم که بشما دادیم این نعمت آب شیرین را کسانی میدونند که در جاهای زندگی میکنن که آب اونجا شور هست و آب اصلا گیر نمیاد و برای یک گالون آب چندین کیلومتر میرند از چاهی که دور یک آبی باشد از اون جا می گیرند یا اون کسانی که کنار دریاها زندگی میکنن و اونجا هیچ سیستمی برای آب شیرین نیست مجبور هستن که دستگاه بیارند آب شیرین کنهای بیارند چقدر حزینه میشه بازم هر چند روز یک بار خرابه لذا به شما انسان ها تعالی مفت آب شیرین داده و این کوها را داده که این کوها چه منافع تو این کوها هست چه خیراتی تو این کوها هست اینها دلائل قدرت خدا خداوند میفرماید برای شما انسان ها عجیب هست که دوباره بعد از مردن زنده بشید مگر همین مخلوقات ما را نمی بیمینی اینا عجیب نیستند اینا خدا پیدا کرده خدا چطور تونست اینها را پیدا بکند قدرت داره پس اون ذات قادر که اینها را پیدا میکند شما را هم مجدد بار دوم پیدا میکند کاری ندارد رضا الله می فرماید و جعلنا فيها در این زمین ما قرار دادیم میخای و کوهایی که شام خاتن بلند هستن و از قیناکم ما از دل این کوها ما به شما آب میدیم آب شیرین واقعا کو بیشتر هایی که تو کوها هستند دقت کردید این آبها آب‌های شیرین هستند بعضی آباد و بیابانها شاید شور باشند ولی تکوها آب‌های شیرینی هستند این آب از کجا میاد آخر این سنگ آب از کجا داره همه اگر انسان فکر بکند به عمق این دلایل بره معلوم میشه که خدا خیلی قادر است انسان متوجه میشه پی میبره الله تعالی اینها را بار بار تکرار میکنه ما شما متوجه بشیم وَيَلُونِيَ وَمَا إِذْ لَلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ مِنْ فَرْمَحَ لَا كَتَرٌ رُوْزٌ بَلْ تَكْذِبُونَ دِجَانَ كَسَانِكَ التَّكْذِيبِ مِكُونَتْ وَإِنْ دَلَى الْمَزْكُورَ نَمِي إِنْتَلِقُوا إلَى أَمَامَكُمْ تُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ تَخُوفُ في بودید اون را تکذیب میکردید انسان چی چیزی را تکذیب میکنه انسان منکر عذاب خدا را تکذیب میکنه اینکه پیامبران پیانبران میگفتند عذاب میاد مجرمان و مشرکان چی میگفتند زودتر بیاد کی میاد تاریخش را بگید تما خودی را آماده کنیم هی تمسخور خداوند میفرماد برو بسوی اون چیزی که تکذیبش میکردی باورش نمیکردی انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب بروید شما بيسويه سایه ای این سایه سایه دود است سایه ای که ذی ثلاث شعب دارای سه شعب است ببینید دود وقتی که خارج میشه خب در این طرف اون طرف منتشر میشه اما دود وقتی که زیاد باشه و از اون دودکش با سرعت خارج میشه معمولا سه بخش میشه یکی مستقیم را... راست میره به طرف بالا دو تا دیگر راست و چپ میره لذا خداوند میفرماید برو به طرف اون دودی که سه شعبه یعنی این دود حکایت میکنه از یک آتشی که اون آتش شدیدن شعله هست هست و اون آتش بسیار خطرناک است کنایه از عذاب است لا ظلیل ولا یغنی من اللهب نه این خنک است ذلیل میگویند اون سایه‌ای که بر انسان بیفتد و خونک بکند را سایه درختی برو بشین ببین چقدر خنک است چون رطوبت دارد اما سایه دود که میشینه گرمیش بیشتر میشه حرارت بیشتر میشه لا ظلیل نه این خنک است ولا یغنی من اللهب و نه انسان را از اون لحب لح یعنی تپش لحب یعنی اون شول ای که میزنه از اون انسان را مستقیم می کند یعنی اون تپشش اون لهش اون حرارتش انسان را آزار میدهد و بعد اون جهنمی که این دود از اون خارج میشه الله می, می فرماید انها ترمی بشر کللقاست. اون جهنم شرار، شرارهای های خودش را میندااز شرر. تو یک آتشی باشد تو این آتش شما هر چی بندازید خیلی چیزا تو این آتش منفجر میشه و بعضی شراره هایشجررقهش میفت تا بیرون. از بس که اون آتش خطرناک است شر هایشجررقه هایش بیرون میاد. اما هر جرقه ای هر شرار ای قصر می اندازه یک ساختمان. یعنی یک شرارش به اندازه یک ساختمان یک ساختمان بزرگ را تصور کن، نه از این ساختمان های دنیا لذا انها ترمی او شراره را کل کالقصر به اندازه قصر کانه جمالتون صفر گویا انها شطرهای هستند زرد رنگ یا مایل بسیاهی ببینید بظاهر دو چیز گفته شد آیا قصر که خیلی بزرگ است و شطر کوچیک است آیا شراره ها آیا جرقه به اندازه قصر است یا به اندازه شطر تطبیق بیان کردن مفسران میگویند که ابتدا وقتی که این شراره این جرقه خارج میشه مثل قصر است ولی شما میدونی این وقتی که میوفتد کم کم چی میشه سرد میشه کم میشه کوچیک می میشه آخرش به اندازه شطور است گوی از جممالتون سفر یعنی چه؟ های زرد رنگ. اما بعضی میگن نه اینجا خداوند از زوجل دو تشبیه داده. یک تشبیه به عظمت و بزرگی هست یک تشبیه در ردیف هم بودن هست. ما کمتر بی دیدیم ولی شنیدیم در قدیم وقتی که کاروانها میرفتند برای تجارتی برای سفری، شطورها پشت سر هم بودند یکی جلو، یکی دیگه پشت سر یکی دیگه پشت سر در یک ردیف قرار می گرفتند مثل ماشین ها که الان چطور پشت سر هم هستند تو جاده قدیم ها شطرها به این صورت پشت سر هم بودند لذا تشبیه به قصر هست در بزرگی و تشبیه به شتر هست در اینکه این, این شراره ها پشت سر هم از جهنم میان بیرون چنان درخشنده و چنان زرد و قرمز هستن احساس می که شطرهای زرد رنگی پشت سر هم دارن راه میرن یعنی چنان آتشش مهيب است، آتشش خطرنا الله نجات بده. ازا الله می فرماید که انهو صفر گویا اونها شطرهای زرد رنگی هستن یا سیاه ویلوین یوم اذی للمکذبین در اون روز برای تکذیب کنن دگان اون روز هذا یوم لا ینتقون می فرماید این روز روزی است که مردم سخن نمیگویند نطق نمیکنن از بس که وحشت است از بس که می هیچ کسی یارای سخن گفتن ندارد ولا يؤذن لهم فيعتذرون و اجازه نداده نمیشه شه اون انسان ها که معذرت خواهی بکنه به کسی اجازه نمیده اونجا یک سکوت خاص حکم فرماست کسی اجازه ندربید عذری بیان بکنه بی یک بهانه‌ای بکنه و ایلهی یوم اذل للمکذبین هلاکت در اون روز برای تکذیب کنندگان کسانی که تکذیب میکنند دلایل الهی را هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين الله میفرمايت این روز روز فیصله است روز فصله است شما را هم جمع کردیم و اولین اولین را هم جمع کردیم شما را و اولین را جمع کردیم یعنی چه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که رئیس مفسران است میفرمايت در اون روز همه منکران نبوت و منکران پیامبران جمع می شوند کسانی که از این امت انکار کردند مثل ابو جهل ابو لهاب عتبا شیبا ولید امیه اینها هم جمع می شوند کسانی که از امت های گذشته سیدنا موسی را عیسا را نوح را ایوب را زکریه را اونها را انکار کردن اونها هم همه منکران چون جرمش و مشترک است در یک جای جمع میشن. لذا می که این آیه به این معنی است هذا یوم الفصل این روز روز فصل است جمعناکم والاولین شما را جمع کردیم یعنی جمع میکنیم والاولین پیشینیان را اونهایی که در گزشته انبیا را تکذیب کردن همه تون را جمع میکنیم اونجا خدا به مجرمان میگه کان لکم كَيْدٌ فکیدون اگر برای شما کیدی هست توتعی هست یا مکری برای نجاتتون هست پس بر علیه من کید کنید برای نجات خودتون تدبیر کنید برنامه ریزی کنید میتونید؟ نمیتونند ویل یوم اذل للمکذبین در اون روز حلاکت هست و التباهي هست برای کسانی که تکذیب میکنن چرا تکذیب میکنن مکذبین لحاظ الفصل اونهایی که این روز فصل را تکذیب میکنن هلاکت و تباهی بعد از اینکه الله عز و جل ذکر فرمودن که انسانهای مجرم مجرم صفت اونجا چه حال زاری دارند بعد از این الله بشارت بیان فرماید. تبشیر و خوشخبری مجده برای اهل تقوی برای اهل ایمان ان المتقین فی ظلال و عیون همانا متقیان پرهیزگاران اهل تقوی در سایه ها هستند و چشمزار ها هستند سایه که الله تعالی در بهش برای اونها آماده کرده انسان نمیدونه دونه چه سایه هستند از تصور ما بالاتر سایه های بسیار خوب خنک هوای متبوع و همچنین چشمزار های خوب اینجا در کنار انسان هستند و فواقه مما يشتهون و میوها اون میوهای که اشتها دارن اون میوهای که میل دارند و دلشون شمی کلو و شربو هنيئم بما کنتم تعملون انجا اکرام می فرماید خداوند مؤمنان را بخورید، بنوشید. هنیان با لذت، خوشگوار، با لطف و لذت به ما تعملون این سبب ظاهریه به سبب اینکه شما عمل کردید. خوب عمل کردید در دنیا. لذا در مقابل اون عمل کردی خودتون بخورید و بنوشید. ویلون یا انا کذالک نجز المحسنین ما انگونه پاداش می مخلصین را یعنی تنها پاداش برای مجرمین نیست پاداش نیک هست پاداش خوب هست برای بندگان مخلص خدا برای کسانی که با اخلاص الله عز و جل را عبادت کردن ویلون یوم اذن للمکذبین هلاکت و تباهی در اون روز برای تکذیب کنندگان کسانی که این نعمتهای مذکوره را تکذیب می کنند کلو و تمتعو قلیلا بخورید و بحر بگیرید مدتی مدتی خدای تعالی همین مکذبین را می فرماید شما انسانهایی که تکذیب میکنید قیامت را شما مردم مکه چند روزی بهره بگیرید بخورید بهره بگیرید اما اندکی زیاد نمیمانید مانید اینکم مجرمون شما مجرم هستید شما منکرین قیامت هستید شما مجرمین پیش خدا هستید ویل یوم للمکذبین حلاکت و تباهی در اون روز برای تکذیب کنندگان این مجرمین و تکذیب کنندگان کیا هستند؟ الله می فرمد و اذا لهم اركعوا لا يركعون هرگاه بیانان گفته میشد که رکوع کنید رکو نمیکردند رکوع کنید به چه معنا منظور رکوع نماز نیست گرچه بعضی گفتند که اشاره به بعضی از اقوام گذشته هست که دین داشتند از انبیاء گذشته در نمازهای اونها رکوع نبود. اما وقتی که رسول الله آمد در دین اسلام و در نماز ما رکوع هست، به اونها گفته شد نمازی بخوانید که تو اون رکوع باشد ولی اونها نکردند. ولی حقیقتش اینه که این به اهل ادیان گذشته نیست. بلکه اینجا اشاره به مشرکان مکه هست، به قریش هست. مراد از رکوع، رکوع اصطلاحی که شما در نماز میکنید نیست، بلکه مراد از رکوچی توازو هست در مقابل فرمان خدای اززوجل از خود نرمش نشان دادن هست پذیرش هست یعنی اذا قیل لهم ارکعو لا یرکعون یعنی اخشعو و توازعو به اونها گفته می شد در دنیا که تواضع کنید در مقابل فرمان پروردگار تسلیم بشید از خود نرمش نشان بدهید آنها قبول نمی کردند نمی پذیرفتند لذا به انها گفته بود تواضع الهی به قبول وحیه و اتباع دینه و دعو هزا الاستقبار این تکبر را تکبر نکنید بیایید به فرمان خدا چنگ بزنید. ولی اونها چیکار کار می کردند همین سردمداران کفر و شرک مثل ابو جهل و ولید ابن مغیرم میگفتم برای ما آر هست ما بیاییم با این فقیر فقرا یه جا بشینیم لا یرکون این از خودشون فروتنی و عجز نشان نمیدادند دادند. ایلو یوم اید للمکذبین حلاکت در اون روز برای تکذیب کنند کسانی که این نوع احکام خدا را تکذیب میکنند اما بعضی میگند و ازا قیل لهم ارکعو لا یرکعون مربوط به آخرت است مربوط به آخرت است چطور مربوط به آخرت است حدیث را قبلا خدمت شما خواندم که خدای تعالی در آخرت ظاهر می شوند و به بندگان مؤمن و موحید خودش می فرمایند که وقتی که جلویشون ظاهر میشه همه به سجده می افتند. رکو همون سجده سجده همون رکو اما یک گروه میخان اینجا خودشون را مسلمان نشون بیدن نمیتونن لا یرکعون نمیتونن اونا به پشت میفتند یعنی توفیق پیدا نمیکنن قال ابن عباس اینما یقال لهم هازا فی الاخره در آخرت به اونها گفته میشه که بیاید خدا را سجده بکنید حین یدعون ال سجود فلا یستتیعون پس نمیتونن سجده کنند و اذا قیل لهم ارکعو لا یرکعون ويل يوم اذن للمكذبين حلاكت در ان روز برا تكذب كنندگان احكام مسكورة را فبأي حدیث بعده يؤمنون ببینید ان قرآن چقدر شفاف واضح دلائل قیامت را بيان کد و احوال انسانها را بيان کد لذا کسانی که این باور نکنند کسانی که این به این ایمان داشته نباشند فبی ای حدیث بعده یؤمنون بعد از قرآن به چه کلامی به چه سخنی اونها ایمان می آورند یعنی وقتی که قرآن شما را اصلاح نکند قرآن شما را نسازد هیچ چیزی دیگه شما را اصلاح نمی کند نمی سازد